یعنی قاهرین المعصومی و لعت و ظاهمت و علا عدی آلیه مجمعین اللهم رفیر آلیه و رحمنا رحمتی که در بحث زن از که آلیه متعد متعدد دیت مباحث شدن ما بحث اول اونو در تحریف خود این خودی زن و مذنه که در عبارات و و عبارات و اصولی این فیلم بعد و اول اون رو گفتیم به توفید رو داشت از تو زن در مجموعی شواهد استعمالیش در ایش ایک نوزیق هر نفر ادراک ذهنی که دارای نوزیق و محدودیت باشه و او زن با اون ادراک ذهنی که خیلی واضح تاوند و روشن و لمحان در شوشه ای میکن که دیدو سویه شدش آسمان پس زن در اصطلاح این ارز کرده که در مجموعه اصطلاحاتی که در این سمختم خیر یا به صور کلی در معالم معارف اسلامی حالا این توضیح هم باز ارزوات هم کنزو آدم شد دیوز اصطلاحاتی که در قرآن کریم همون با راست سنمای شده و من با و این بحثی هست بنشون که این دو تا دو سا کردن با الله و ظاهر و خرب زده درذکر کتاب ابن عباس چون گفتن ابن عباس توضیح بده صابر بن کتاب داده بین الله و الله که اصلا فرد هست یا نه خود من هنوز روشن نیز دارم که واقعا فعر باشه از صلب لغت دارم فعر احتمالا در لحجه ها و در اشایه رو شد همینطور که ادهی از معرفی نعرف هم معتقدن وقتی که تدوین لغت عرف شد که از قباطل مختلف وجه های مختلفی زبط شد معانی که در اونجا بود میوردن در ازاد دو تا سه تا چهار تا معنی چهار تا لحظ چهار تا سکراعت این ها اضافه می شود در کسابه وقت اینا رو بردن این تعدد معانی و این تعدد استعمال خیلی روشن نیست نظر من همه از فرق بین غنیم که غن چون در بران غن هم استعمال شده غن با غن هم استعمال شد فکر نمی کنم فرقی به این دو تا باشه ظاهرش یکی باشه فرقی نوع قصوره اما حضرت حضرت یعنی این خیلی اینطور نیست و رسول واضح نباشه اینجا گفته من از بخیر من فکر نمی کنم که من هر یکیه به به ارتکاز که من دارم هر یکی می عرض کردم مفسیر و موقعاویی سعی به این دو تا پس مراد من ابن نحباد ساحب که کتاب الوقت نحباد شاهر گوگلاده ای صاحب نربان کتابی در فرق داره الان یادم نمیاد مضمون کتاب فکرم کنم اجمالا مخواسته کهی فهم نداره دیدن کتاب رو چاپ اما نداره الانی که ما که آن عرض که در نظر یک نوع زیر محدودیت این این اصطلاحاً من بشه وقت در مجموعی ما آره دینی ما و مجموعی کارهایی که شده حالا بعد بعد یه بارات از این دو نوع استعمال شده این کلمه نه یک نه. در غمه اول در زمان صحابه غن به معنی در مقابل علم در اینجا مرادشون اولان در مقابل علم علم اونی که در کتاب و سنت بود اونی که در کتاب و سنت نبود گوزن غن مرادشون این بود ولی ولی علم آور باشه علم اصطلاحی اصطلاحی بود مثلا حده قصد در قرآن ذکر شده کفاره شهرمندان هم در قرآن ذکر شده اما به قصدشون حد شروع خمد ذهب نشده این حد شروع خمد چون آم سآل پس مراد از زن در مقابل علم نمی این چی در قرآن و سنت بود می علم یا علمی هر در قران نبود و صحابه مولا خودشون از شواهد پیدا کردن گفتن ون. و رضا ها هم اشکارشون این بود شما تعبد به زمین می‌کنید. ما باید به علم مرادشون از علم زن در این اصطلاح این یه اصطلاحی می‌خونم بعد از شواهدم برای چون تو توی عباراتشون تفسیر تو دارند این کلاماتن باشه. این رو اصطلاحاً ون می‌گفتن. یعنی این ادراک خصوص داشت ناقص بود محدود بود چون از کتاب و سنت برسته داشته بود پس ما دو بحث در باره زن می کنیم یک زن این اصطلاح و اون که با اشتها فقیر او در میاره فقیر یا مشهر بقیر خودشون اون رو از آزاد رو روایت از به منصوب است که در باب حد شور به که صحابه اختلاح کردن برزاره حد ندارد چون در برآن و سنت ندارد خوندیم که هم بازم این مطلاق رو بود نه روی کنه ما هم داریم سنادش قبول سریعه ما هم داریم که همین روحی فرمونم لحنه ها ادا شربه سکر و ادا سکره هدا هدا اخترا و حد دل فریه سمانم یه هستنید با یه نقر قیاسی ملحق سید و حد قرد این دست اینجوری بود مثلا ما در برآن حد شربه حد سرغت داریم حد زنا داریم حد قردست داره انما جزا لذیم آرهون الله و رسوله او داریم اینا بحث میکنن شروع بخند نداریم ملحق به کده نیکیش بکنیم اینا هم نگفتن ملحق به قردست شروع به هم شروع کنیم هم زنا به زنا ملحقیت نکنیم اونی که متعارفه در ما به الفاظ درش پس این دیگه و هستی سفر به حد بکن این رو اصطلاح نسمشم این اصطلاح جدیده چون کتاب رسالین ها این اصطلاح به کار برده نشده پس, اصطلاح... پس ما به اصطلاح و در اصطلاح پس رن هم حرض اصطلاح در نظر بیم بس اول اصطلاح اول رنی که در مقابل علم مراد اینه علم یعنی ماجه های فرکتار من مالام یک کتابی نوشتم. این انشاء الله حتمی گفت که مثلا اهل سنت اولا و آیاتی که در احکام نساب دادن اینا خیلی حساب و محاسبی باشیم که شامل ما در 500 تا نه نه 500 تا در حلال و حرام از تاریخ این لغت 500 رو تا اونجایی که من میذارم حالا این ما ناقص باشه اولین بار مقاهله نه. سلیمان یا عقیل سلیمان و خراسانی ایشان گفته از سنت ایشون در فرمه تمام محاصر ما و صادق و چهالا عوال موسیقی اول ایشون داره که سال 500 سایه داری بعد از اون در کتب اهل سنت مشغول شد از کتب اهل سنت هم بکتا به ما آمد لیکن همینجور که اده از احل سنت گفتم آیاتی بکی اون که استدال بیشم اینه اونی در شکل از جای آنها این د مشکل اینه که مشروع اون این تا آیه اینا به آیات. راجع به روایات هم میشه اگه شما تعجب بکنید خود اهل شماره کردن کند در گزارش در احکام مثلا شعر خورده اصلا شماره دارن. برای اینکه این بحث رو بشه یعنی این احکام به این شماره در روایات اومده بقیه چیزا نمی هر کی در مورد احادیس و بود. می اون میشه علمی در این عدد می... می‌جبا. بندیم این که در این قسم اول وثاقت رو حساب نمی‌کنن خوب دقت بکنید. ایمان رو حساب نمی‌کنن. در این قسم اولاً خبرگی طرفه اون باید اشتهادش خیلی کامل باشه. قدرت ردیف فرو بر اصول داشته باشه. و لذا ان شاءالله بعداً اصلا اهل سنت در صحابه کسانی که مشهدا مثلا هفت نفرن ده نفرن محدود کردن که اینا حق دارن که از کتاب و سنه اون مواردی که مذکور نیست منصوص نیست در بیاره این محدود کرده مثلا در شفتی بزرگیش رام مثلا ابو هره محل کلام یه دو گفته ایشون فقط محدثه ابو هره فقط شنش یه دو قفل نه او فقیه هم هم ازابه محدثه این گنادش روشه شد یعنی یک ازه محدودی از صحابه در یک مجال محدودی گفتن آیات این قدر روایات این قدر بریه زنیه سازه زن نگه باشه مثل ابو هره این آزا پیشون را ابو قبول ندارن مثلا خلفای راشید ابو, هره ابو, ابو و عمر و عثمان و عمین و عمین ادده نام اگه معاید باشین ازم میبرن ادده معاید این ها حقه اشته هستن پس اینا همه محدوده خیال تو این, این تو خیال نکه این موردشون عذن این اختلافی کنان تو زمین شما هست قاقی وقتی یزید و ما بیویدان یزید ندار توشون دارن نادری که گفتن کل لسه ها و مشهل دارن این دارن توشون بعضی هم نویشتن در سه هزار و خوزه این هم این هم دارن اما مشهورشون نیست می کنم حتی در نسه ابوهارو اختلاف دارن باید همه این ا به میشه اعتماد کرد یا نمیشه اعتماد کرد خب در قطع بفرماید این یک ایت که ما الان به کار نمیبریم اهل سنت اصطلاح اول یاد بگیم که مصلت پس مرادش از زن اینه این ما بذاریم اصطلاحش قسم اول از زن مرادم از قطع و علم در مقابل اون اونه یعنی ماجهار که کتاب از حالا بگیم ظاهر کتاب این طوره ده درصد احتمال هست این, خب این بحث اینا رو حساب نمی کردن است که ما جای فلی کتاب و سنه علم و مالم یاده کتاب و سنه و, و اون بحث تحصیلی و مشکورم در حقیقت اینجا بوده بحث تحصیلی و مشکور. چرا یک ادهی از بزرگانشون ادهی از بزرگانشون این شایده اسماشون میخوادیم بیشترم معتظرم نه اینکه که اشاعره که ما نسبت بیرود خوندیم های اونا مثل پازی عبدال جبال مثل ابو حاشم و جبایی و اونا ابو حاشم کسر این که پدره جباییان که اینا بزرگان موتزر اینا بایدن چون نفسی نداریم حکم نداریم چون حکم نداریم. نداریم هر مشکل هر چی گفت میشه حکم الله تو چی دینی؟ تو چی دینی؟ این به شواهد پیدا چون شما میگید تفسیر نمی‌شید یعنی یه چیزی باشه خطا بکنه اون چیز نیست خطا کردن چی وقتی چیزی نیست بینی چجوری تصویر خطا شما می‌کنی شما باید یه چیزی رو فرض بکنید تا ما خطا بکنید وقتی چیزی نیست خطا چی ما وقتی در کتاب نقروض و در روشانش بحث تجوید بحث تجویزی که ما قبالن ایده شو اینه و انصاف رضی یه روز در ذات اثرات این بحث یه بحث بسیار سنگینه بیچاره سنن انصافا باید معترض و از حالا من چون گیر انوزه میخوام بحث حالا عرض می این باز چرا خیلی بحث اینقدر این بحث سنگینه حتی از بزرگانشون هر این در شد ای خیلی تعجبه یعنی از شافعی و ابو حنیفه رحمهم الله هم به تشدید اصلا تخته. من بینه عبالحسن اشعری که ما بیم اکاره خود که امام اهل این مذهبه از این دو رعی نفسوده تخته هم را تصویر نفسوده این که تصویب اون کسانی یعنی که تخته ازشون نگاه نکنید کاملا هر مثلا مبهمه چون کسی که غالب تخته واقعی فرض لذا انشاءالله این عباشه ای میگن برای شما تجربه این عباشه رو میگه ما درست واقع نداریم اما تخته به این معنا میگه مثلا فلان صحابی که و القدر اگر از این آیه از اون باید یک مطلبی رو فهمی که در نیست این مثلا میگه این یا خطا سیاستوا خطا به این معنا بی معنا خوب دقت که اگر خداوند حکم میشد این تو حکم میشد فقط که میخوام فرض بکنید تو تخسیره تخته اینه موقع تخته این ای ای خطا کرد پس باید یه فرضی باشه تا خطا بکنه میگن مولا از تخته یعنی اینه که اگر فرزن حکمی بود یعنی اگر فرزن خداوند می‌خواست برای خل قرار بده 80 تا قرار بده مثلا برای قرار می‌داد نیست چون در کتاب و سنت نیست نیست بلکه اگر این که میگیم این رئی تختهه امیشه خون رای تصویب میشه این قبول اون چه چون که نیشه هر سه نفر در نفر باشه معتظره میگن اشکال را هر سه نفر باشه چه اشکاله و این هست چون من هم برسیم که سنگینه همینجا مثال چه بودم, شو بودم, شو بودم, بودم, بودم, بودم. این رو هده امس کردن معتظره در حقیقت میخواد بگن این شبیه مثلا در ارت ما شبیه قلمت بزاریه یه <تصفح> معموم همزید یه این خونه یه ممار گیرد یه خونه 15 میدون میگه 12 میگه سونجه چی میگی؟ سه تا قول هست در قیمت خونه سه تا ممار متخصص البته شما چی قاعد میگه میگین یکیش درسته دو تاش باطله الان ما خود اون در که؟ فقارشی ای رفت میگن درسته اگر یکی گفت در میگو یکی گفت 12 ملیون یکی گفت 14 ملیون الان بناشونی که هرسه درسته ولیزا میگن باید معدل بکنید یعنی هرسه رو هم جمع بکنید ده و 12 24 و 15 29 تقصیل برسه بکنید این که میگن جمع بکنید تقصیل برسه این هرسه درسته که میگه رو قبول کردید تعبودن ما سه رو قبول کردید چرا؟ میگه این در در اونجایی واقعی موجوده اون دقیق بکنیم یه از آقای بون واقع رسیم دو تقیقی بون واقع رسیدن چون قیمت یه چیزیست که رهبات و اقلالیه خود رهبات و حد محدودی نداره اونش که ده اینطور نیست که قیمت خونه یک امر واقعی باشه یکی بهش رسیده یکی بهش نرسیده اون دقیق اونا میان یعنی شبیه اینو تو احکام میگن خلاصه تو خلاصه بحثه ولی چند تا نکاتی که ان شاء الله که میگم چون مذهبیه بحث تفصیل یکی از نکاتی که انشالله شاء کرد یکی از مشکلاتی که این اون در تفصیل دار تو این موضوعات خارجی احکام کردن که ما انشالله مثال میش... الله مثال مسابق مسابقه ذکر میکنیم ببین شما در قیمت گذاری نمیگه یکی درست دو تا ندرست اونا میان بخواهد اگر احکام همینطوره خلاصه مطلب باشه مثلا از صحابه برزن چه تا ضرب رو بزنیم گفتن نه آقا ده تا ضرب رو بزنیم امیر اولوانی فرمان هشتات اینا میگن چون شروع خم حدی نداره در واقع هر کدوم که ملاسمات و دید همون درست. درسته اینم درسته اونم درسته و بودن در اختلاف مشتهدین مشتهلین یا مشتهدین هم تصخیره شما مخیری الان علمای ما اصلا میگن در اختلافشون گفت وجود اعلانه اونا رو جو بعلانه شرط نمیدون که یک مسئله مهمی هست در من ان شاءالله همه خلا زیر بناها با هم مرتبط هستند پس بنابراین فکر می‌کنم که یه حدی الان یک صورت اجوالی و اون چیزی که معتزله که عقلی گرام میگن آقا در اعتبارات قا وقتی نیست شما خود بشی با قصاصی به نظر کر در بیای اما اینکه بگی این واقعه یکیشان هم خطا است یکیش ثواب اونایی که گفتن خطا و ثواب گفتن نه البته از معتزله است که داره همه احکام اون بحث دیگه اونایی که گفتن نه جایی خدا گفتن مراد از خطاب و اینه من ایشالا پردا بحث برسه ای این اعبار که این مسئله کمی اهمیت پس خلاصه بحث به بحث اول راجع به زن تفسیر ما از کلمه زن زن یعنی اون چی که در کتاب و سنت نیم در مقابل ایم یعنی اون چی که در کتاب و سنت هست پس ما در فقر دو جور درینیم ایمی یعنی در کتاب و سنت هست زني این در کتاب سنت نیست دیگه کاری به درجاتش ندار ممکن اون علمیه نود درسد بشي ان زن د ده به اینا کار نداري مثلا ن رشن ش نکته بحث زن و علمي اینه این از کی مطرح شد ان از اهل صحاب درست برکی پیغه آمد بعد از پیغه هم اصول از, از سالهای پنجه و شفت در دنیا اسلام دو تا رشت از معارض دینی زودتر از دریه شروع شدن تفسیر و در از همون زمان صحابه و تابینی شروع شد و اصول و رجال افت کردن اواخر دوم تا در حتی, تا در حتی اواخر اصول از این اصول شد این اصول بحثی که پیش آمد بیشتر بحثی که رو امارات و چراغ بود اون مباحثی اصولی که در سهاره بیشتر مثلا و حجت هست میت رعی حجت هست اشباه اون بیشتر روی مساجر تشریعی بود این بحث دوم بیشتر رو چراغ بود رو امارات بود چیزی رو در اینجا زن یک معنی دیگه ای پیشتریا باشه ها این همین مدرد که در ذهن علمای ما است. قرد یه یعنی اون احتمال واضح دیده شبه نیست زن احتمالی که با شبه امراه بود مثلا اخوزان گفتن این دلیل نسون نسون نگه یهتنون خلا زانون زانون یهتنون خلا اونی که میگوستن نسون گفتن قفلی اون که میگوستن زنون ظاهران نزنی این معنی از آنسی اصول ما آمده مثلا اگر خبر بود که 5 نفر 10 نفر نقل کرده می گفتن این متواصله این متواصله می گفتن غفی. یا اگر خبر قاعد بود محفوح به قرآن قفلیه بود این گفتن و این بحث زن این معنا بیشتری محورش این دو بود یکی زواهر بود یکی در زبایه را آمین نگوشن حاضر نه سامی اینه قهری یعنی غنی باشنی شد این ای اصلاح دوم این اصطلاح دوم این, این اصطلاح اوله این اصطلاح دوم یعنی هر چه در کتاب بود مثلا هر چین روایه که در بابه حرف قرئه مهران نظانی که الان اشاره مشخص خب در مورد رو این روایت تقریبا میشه گفت که به هر قرئه مستفیض و شواهد زیاد سنی شیعه احسان متعدد صحیح خیلی زیاده این شخصا چه حرکتو اهللشو پیغمبرو اون از برننده خب کجا این اصل مطلب میشه قطعی کجا محل کلام بود محل کلام این بود که این حکم قرئه مال خصوص جماعه که مورد سواله یا این به کل من افسر امدن پیشه احمده ها این ایش و زنی کجاست قطعیه کجاست و اصل مطلب میشه و این فرق مثلت میشه و مثلا ما در روایاتون از احضیت برسانده سیده داریم و یادم هستن جای شوقه هم نداره هیچ شده باید سوقایمون شوقه نکلیم من افسر متعمده اما ابن حزم میگه نه خصوص جماعه اگر قضا خود و اهل ظاهرا ظاهری های اهل سنت گفتن خصوص چون این در جماع در خصوص جماع قرار ثابته اگر در محرم ها قضا خورد آب خورد قضا خورد این چه نداره نلده این مال خصوص جماع دیدات پس بنابراین این این تقسیم از کی شروع شد اواخر قرن دوم کی شروع شد بعد از فقه چون که آمد تغییر شد آمدن ضوابط و قواعد کلی استنباط فقه رو جمع کردن اسمشون اصول حالا تدریجاً که اصول آمد روشه هر دو بحث رو بردارن یعنی هم آمدهن مصادر تشریع رو بررسی کردن هم طرق و ضوابط رو بردارن بررسی کردن لذا بحث و اصول در پیش اهل سنت به این ترتیب افتاد الان در کتب ما بحث مسادر تشریف درست هم آمده که فاره آمده مسادر تشریف مثلا حقیقت سنت، حقیقت اجماع، حقیقت عقل اینا تو مباحثمون ما درست هم دهده فیاس، رج، داره اما در کتب اهل سنت مفصله فصل آمده این ها مسادر تشتیق. بحث زواهر هم که از کل این بحث زن دو جا بیشهر کار برد داشت دو جا یکی تو مقام زلالت ظاهر و نص ظاهر رو میگفتن زن اونی که احتمال خلاصه میگفتن نص پس علمی و حت زنی نی. اگر هر این ای کثیر بود محبوب به قراره سر بود میگفتن علمی اگر خبر واحد سریا بود میگفتن زنی بنابراین ما در خلال کردن انجام انجامیدی در روحی زن دو تا بحث داریم نه یک بحث یک بحث زن به معنای اول یک بحث زن به معنای دوم یک بحث زن به معنای اول که در مقابل کتاب و سنت آیا این زن دیگه لازم که هستان هشتاد درازه باشه شست درازه باشه 60 باشه ممکنه صد درصد موشه صد درصد یقین داره موشه که این راه درست است و با این شواهد موجود این حکم حسابه داره صد درصد میگه از اینجا خاصی نداره اینا نیامدن روی این مسئله سیلسی بکنن که درجات ادراک شما شکر داره آمدن پشتوانه ادراک رو حساب کرده دیگه روز این درست رو انجام داده که شباذه كل کل رو یه ذهن تفسیر میشد طولانی میشه کل آیات, می می آیات رو رو که با هم بگذارید در مقدار زیادی از آیات قرآن زن این معنا کاری در چه ادراک نداره مثلا انهم الا يظنون انهم الا يحي وصول ولا يهن ظنون در حق ان الله لا يغني من حق شیئا حق یعنی واقع متن واقع اون ادراکتو که پوششوانه علمی نداره تو رو نمیرسونه. اون رسول بورغانا قرن کونتم سادهیی ما انزل الله به مجموعه این شواهد بحث از زن بحث پوششوانه علمی است. و نظامون گفت این شما از کجا این حکم میگی؟ از کتاب و سنت این از غیر کتاب و سنت معنی یا نقدان عیارتون باشه مولا محمد که این اصطلاحو میکرد اشکالی که لی نظر نزنن این این مسله ها دارند اصطلاحی دوباره این بعد از البته بعضی از اولماع اهل سنت هر دو معنا رو حالا پوشان مثلا زن به دو معنا است نه به دو معنا میشولی دو زمانه دو زیر معنا زمان صحابه چون خودشون صحابه بودن میتونن آقا خا... تو کدی از پر انبالشین گفتن کتاب هست نه خیلی رو دیگه باشید کسی از این غرفت چی میشینه دیگه اون گوده نشدی؟ صاحب گفت نیست لیکن های دفعه بلا بسنه اما در غرفت دو بگید صافی که نیست دیگه نیست لیکن به کتابه سنه دقیقه میفهم این که منشع شد در قرمز و زن در مقابل این دیگه این معنی قرار بگیره از از کنم کار برد وسیع دار بحث تعاروزم داره وقت تضاون وقتای دیگه هم هست لكن بیشترین شی کاربرد اساسش این دو تا بود یکی دلالت بود که منوسه علمی یعنی داشت ظاهر زبان یکی هم تعریفیات بود خبر محبوب به دراو یا که توصیف می‌کنه وقتی که کسر این معنا اون خبری که یک نفر سره نه میگه بزرگ زمینو در اگرم شغل ابو کذا بود که اون یه احتمالی بود آسان از ظاهر خارج بود اون قسم دیگری بود پس بنابراین خوب دقیقه در فرمانی که ما در مباحث خودمون دو جور بحث داریم نه یک جور بحث و اینشالله همز میکنون حالا ابن قبیه گفته باشه نه شما کار به این نداریم ما بحث رو هر دو میبریم امکان تعبوده بزن هم در قسم اول هم در قسم دوم. آیا امکان تعبود هست یا نه و آیا اصولا بحثی که او مثلا ممکن است مطرح بشه آیا واقعیت علمی داره یا نداره این راجع به بخش اول که متاسفانه در کلمات علم توضیح کافی راجع به این کلمتن در اصطلاح ما داده نشده این زن باید کاملا واضح بشه مراد از در مجموعه معارف دینی اسلامی چه شیعه چه سنی و زمانهای متعصب این دو تاست یا مرادش اونیست که مستنده به کتاب و سنت نیست یا مرادش است که ادراتی ضعیفه کاملا واضح و بزرها اروفیه کامل و واضحی نداره یعنی به ادرات اخرا مجموعه قرآن تاییدش نمی کنه یک قرآن بریدیس اون رساقت رابی اما قرار دیگه او رو تعیید و تسریف نمی کن این راجعه نیمه راجعه به مطلب دوم از شد که در کلمات بزرگان ما اینطور آمده که مثلا حجیت قصر و ذاتی گرستن زن رو تحبودی گرستن و شهر و جهر رو هم ممتنه گرستن ممتن امکان نده این هم صدرش رو من توضیح ارز کردن این صدرش این برمیگرده که از زمان شیخ به بعد از عبارت شیخ تیگی سریع نیست اما میخوره مثلا لارده تیوزوم الامل علاقه قرقه زبانه این عبارت اینست که اینها در مسئله حجیت دو تا نقطه رو خوب دقت بکنیم من کراراً عرض کردم خیلی ذریع ده و در کلمات اصحاب ما به این زرافت نیامده آزی های چیزی دارد نسبتا یعنی از مجموعه کلماتیشون به هم بریدیدن از در قصد مسئله کاشف مطرح کردن که خب این این یکی دو آمدن ها رو به معنای مایی علی زمان عمل معنا کرده. و سرش هم به نظام واضح باشه مثلا شما داری میبینید به برهان علیه که سیگار زرب دارید میدونید هیچ چوهه که سیگار ضرر داره. اینا میگم وقتی شما دیدیم این سیگار ذره یا آیه مبارکه هلگی میرد کنون اموان الیت اما هنم آیه کنون بیموتونه این داره میبین آتش میخور اما نمیخوریم این وقتی واضح شد اصلا سر این که در لوقت عربی هم قرد گفته شده اینه چون قردیم بریدن شدا کردن شما اگر در اتاقه تاریسی باشین دست دیدیم احتمال نیستون دید ایسمان چیزی خودا که مار اما خیلی شراغ رو شده این کشیست میدین یا مار یا ریزمانه و خیلی شراغ روشن شد سبت اون روشنی انجام میدین مار روز ازش هران ریزمان رو جنگیجه معایم میدنی دقیق میکنیم اینا هرسی چون اینه پس یک ما در غد کج اینه کشده دو ما در باغه حدجت نقطه اساسی احمده دقیق بکنیم این دفعه شب چرا چون وقتی برای ما چرکی شد و کاشفش خام بود واضح شد گفت آفتاب با ما آفتاب. اون دیگه دلیل چی می‌خواد در جای بالای رحمتا این دیگه دلیل نمی‌خواد وقتی واضح شد برای من این سیگار سمه خب نمی‌خوام ببین مختاری رو قصد بر ازای رو داشتن حد بدن فکر می‌کره این اونم که تو زنده باشه از امام سجاد می‌ورد ناح از این شما من علمه عمل ایونی که فیضا عمل می کنید یه دقای دیگه هست به از رسول الله هم از وام صادر هم باشه ال علمه یه تفو عمل فیعنه اجام و الله یعنی اگر شما به چیزی علم پیدا کردیم عمل کردیم اون علمی مونه اگر عمل نکنی لاغوالی می شیم اون علمم می این پلک این سیگار مزره عمل کردی خوب عمل لکن این که تو زنیدی ذرم انجامیم لعباده میشونی که خوب در این که این مزره با این که میدونید مزره انجام شدید علی علمو یهد که بله عمل که این عجاب الله ارتهر این به اون سر تکلیمی شاید این بخواب ورده اون نرازه به ادراک بشن اما سر تعبدیش و قانونیش اون تحلیل و قانونیش تحلیل قانونیش اینه که اضلا اعتبارات قانونی علت غایی عمله وقتی میگیم به بچه کن برو نون بخرت چه اگه باییم نون میخواییم وقتی میگیم به بچه بارون نون بخرت بایین نون میخواییم فقط میخواییم تحلیف بکنیم باییم آمریت نشون بدیم میگید برو نون بخری نون میخوام اونی که انسان میخواد عبارت از عمله به اصطلاح خودشته علت قانونی. علت غایی جعل عمله. علت غایی اون مؤثر اساسی در کیفیت کارهای انسانه و از دارال و آخرال عمل اونه که نحش تاثیر تعیین کنن بذاره پس هدف اساسی شما از جعل عمله. اگر هدف اساسی شما از جعل عمل شد همین که واضح دیگید این فیدار کردید عمل هم بسته بشین اینا آمدن از این نقطه وارده روشن شد زاویه بخص او هم آمدن گفتن اگر شما علم می داشتید این تش تش بود واضح بود هیچ ابهام نداشت، خب همون امن. وقتی این, این نافع برای بزنیتون می‌خوریم، وقتی می دینید را از یک دوری می‌کنیم. وقتی این خصلت توی علم هست اما توی زن توی زن حتی درجه، شما حتی دردی دارید می دینید حتی دردی دارید می کنید موزر انجام گه این و این جمعه میگه اگر شاره و ما قرنن کاری بکنه میگه این هفتاد درده این اسمه جهر <تصحنت> یعنی چی؟ اینا تفسیر روشن شد؟ تشتی رو چی معنا معنام میکنن؟ حجیت رو چی میکنن؟ اما اگر شما جهر داشتید این موزر برای موزر میدونید چیزی چی نیستید؟ چی رو جهر ممکنه که علاوزیتون بکنم اون طرفه نمیتون تو تشتیز رو ده این کار رو بکنم چون هر کار مجبورم پس بنابراین این آهایان رو این تصویر آمدن وارد شدن شما قرط دارید کاملا واضحه پسید رو عمل میکنید زن دارید کاملا واضح نیست این ترجیح داره اما این باید تقریح داشه و ساله ستن شهر بردن ام یک حالت بین وسط در بین دوبون و سهون هم ادهی از بزرگان و اصطلاح به کار بردن اونجا میگن انکشاف بایه هست این تحبیر رو من از درمه آین آین نهاره کردم آی برژاندی من چند بازی کنم شبه این همیدون بحث قبلید از برما های بزنوردیش این هم از چیده هم نه تو تقریات آی نایمی نه تو خود کلمات آی بزنوردی من شبه هم کنه اما قطعی نیم مطلب پیش شبه هم دارم من رو های تحلیلی دارم که شما وقتی قرض پیدا میکنین چه هم نقطه در شما پیدا دوشه یک یک صفت نقصانی شما، دو کاشف از واقعه واقعه، سه واقع برشما منتشفه چهار جریان ج چهارت نقطه تو قرد سفر، صفت کاشف واقع جریع اولی اما وقتی شما زن پیدا میکنید مثلا زید میاد آدید مثلا یه متخصص می گه سیگار زرزد لگه شما این پیدا نمی شید اینجا چه تا حالته از اون چهارتا اون صفتیت نیست کنید چون شما صفت قدر نداریم اون حالتا صفتیت نیست. اما قول طبی کاشف هست واقعا منتشف هست جرع عملی هم میشه این در مورد زن معتمر با قول خودشون که اصول محرز باشه مثل استثاق ایشون میگه در اصول محرز اون صفت نفسانی نیست یک صفت کاشفیت حالت کشف نیست دو انکشاف هست و طبعا جرع عملی هم به طبق انکشاف هست گه شما داریم می که نهاد یه روز زنده و یه روز زنده، این کشاپونداشی، اما کاشف نداریم. بیان آسیب یعنی مثلا میدیم 80 تا زنده نه من دیروز دیدم میگم، ام دیروز دیشد روز باشه. زد اما من احساس کردم میگم، من احساس کردم زنده، تو احکامشون میبیند دیم زنده، این مسجودش باشه کشا دونه کاشش، در عضویت عملی نه، سه احیا سه روش عملی است، از اون تا، نه صفتیت هست نه کشف هست نه انتشاف هست فقط جمعی عملی ایشی نیست حقیق برای این مراقب ادراک قرار بازه هست تو هست و عمل بله اما این چارتر احمالی ارز کردن من خیلی تک یکی از روزه های موسیقی موسیقی نداره که برسه و من گشتم نیدان شما گفتم بل... بله من در کلا مراجعه کردم شما همش اما به نظرم تو ثوابتش شو تو اول استصحابش باشه این چه به نظرم از ایلان نجات‌سازی میگن اصلا فکر میکنم تو ذهنم ذهن یک جای در ثوابت داره به نظرم داره. اما از اول بودنی که که این تحلیلی ندار اول ندارم نبرم خویا تحلیل نمی مثلا من آی خویا این از آی از من یه تحلیل اینطوری برای این درجات معارف گذاشتن روشنی یعنی ما در فقه همیشه این چهار حالت داریم یا قبعه یا زن معتبره یا اصل محرزه یا اصل بهر محرز این چهار معتبه کاملا روشن شد این تصوراتی که در اینجا هست یک کلمه من بگرم یا ترده انشالله بحث این بحث تکلی میکنیم تمام اینها آمدن روی مبنای حجیت و روی جریع عملی به قولیشان روی مقام عمل ما شبه همون چی بود؟ شبه همون این بود که اصلا حجیت درست به لازم عمل هم گفت؟ اما مراد از حجیت ظاهرن مراد, مراد تنجده که اون مرتبه اول از به اصطلاح تنجد و اون ایجاد جایی در مطلب یعنی من هم نختی به پسر هم میگم برو نان بخر اولا ایجاد داری بکن نانم میخواهم اون میبه نان میخره اونا آمدن نازه رو میدیدن ما آمدیم این مرحله رو دیدیم ایجاد دائی و در اصول هم هر در مرحله هست. نه یکی که یکی رو میگن قراز اقصا یکی میگن قراز ادنا قراز ادنا ایجاد و دائیه قراز اقصا تحقیق امازن خالشه روشن شد, شد تا اینجا برسه پس نقطه اساسی که نزید وقتی بگیم نظرمون رو عمله که قراز اقصاص یا نظر اون رو روی ایجاد و که این قراز ادنا این ایجاد و دایید به تطور ما تابع انتقاش شی در صورته دو تا انتقاش میخواد یکی سغرای که کبرا ما اینا رو کاملا توضیح دادیم به ذهن ما حجیت اینه نه جریع عملی از اینجا ما با اول جدا میشه سه جزء داشتن میخوام برایش تحلیل بکنم اونایی که از اون راه تر اونا اومدن قرازه اقصار حساب کردن عمل گفت از کلم ظاهر شیخ هم همینه تبیح نمیکنه میگه لا یب فی لزوم العمل هست. لزوم الافعال این بحث پیش اومد شیخ مطرح نکردن لکن تحلیل های بعدی اینطوره مان که از کلمات شیخ میفهمیم ایشون آهده روی تک برده رو مثل عمل این اگر گفت همه هر دو سینا میجن ما اون ریشه عمل کردیم گفتیم آهده روی ترجل که مرد احناس به انتقاشی صورته این اصل مردان اصل جهت افتراب پردارشون نتیجه اش صلی علیه و الله علی محمد